صلِّ على فوق مثى ابيخ وبنها وبنيخ وصل المستودع فيه فعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد وااله محمد عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم بايد دانش پوست بدن انسان بافت زنده است که سلول های آن مکررن در حال تکسر می باشند. سلول های پوستی تقریبا هر دو هفته یک بار بازسازی می شوند این بافت برای ادامه حیات به انواع مواد مقضی نیاز دارد. تغذیه سالم به طور مستقیم با سلامت پوست در ارتباط است و اثر خود را در زمان کوتاهی آشکار می سازد. پوسییه های برای ایجاد و استمرار سلامتی پوست بیان شده. یک ترک کردن غذاهای مصنوعی، فست فودها، مثل سوسیس، کالباس، همبرگر و مانند اینها نه اثرای تخریبی رو پوست و بقیه اعنده قضاهای سخ کردنی رو ترک کردن یا مصرفش رو به حد رساندن بیشتر بخارپز یا کبابی به شعله غیر مستقیم حرارت یا سنین بالا با کمبود آب بدن و نداشتن دندان که با لست غذا میخوره به صورت آبپز بخارپز یا آبپز میتونیم آسیب رو به حداقل اقل برسنیم آسیب پوستو تو سبد جیره غذایی خانوار مصرف صحیح میوه‌جات و سبزیجات سوم زیاد روی در مصرف چربیه های حیوانی و گیاهی نباید داشت مخصوصا چربیه های با ترانس بالا زیاد روی در مصرف نباید داشت در چربیا. مثل پی، دنبه، خامه، سرشیر، کک خامهی، رولت، نانجکی، تعدیق کل پاچم جیگرسیا موز تهدیک و روغن جامد، سرخ کردنی تفتادنی بودادنی و قضاهای چرب و چلیس هم به گونه ای که برنج دوست کرده یا ماکارنی کف باشقابش روغن بایسته چه قبول هم؟, هم برای قلب زرد داره هم برای مغز زرد داره هم برای ازدیاد چربی مزرخونت زرد داره هم رو چرب میکنه آنزیمای کبدیتو بالا میبرن هم پوستتو چربیشو بیش از اندازه میکنه و ریزش مو زیاد میشه مصرف ها و شامپوهای با درجه اسیدی بالا زیاد میشه اثرات تخریبی دوچندان میشه روی پوست و موی بدن پس باید مصرف چربی ها متعادل باشه اینشالله توضیحش باز بعدن بیشتر. یکی دیگر از چیزهایی که مفید برای بدنه، مصرف غلات سبوس داره مثل گندم با سبوس یا آرد گندم با سبوس مثل جو یا آرد جو با سبوس مثل برنج با شلتوکش برنج شلتوک دار املاح مفید و ویتامین های یک به دو، به شیش، به دوازده به وفور در سبوس و شلتوک یافت میشه پس به همراه قلات سبوس و شلتوکش هم بخوریم خیلی فواهد داره یکیش هم چیه؟ او رشد مو، مندگاری مو، مو فراهم میشه طول عمر مو بالا میره ریزش مو کاهش پیدا میکنه حتی به نفع دفع سموم از بدنت هست، فایبر داره سبوس و شلتوک سرشار از فیبر گیاهی فایبر داره هم پیشگیری میکنه، هم در درمان کلیک زخمی، تنبلی روده بزرگ، مندگاری فضولات در رکتوم پیشگیری و کمک به درمان سرطان کلوم یا روده بزرگ مفید می باشد پس هم ظاهرت رو رو برامی کنه هم درون دستگاه گوارشت رو رو برامی کن چون ام الامراف یبوست مزمنه خود یبوست مزمن مقدمه بواسیر یا بیماری همورایی شما یه واکسن طبیعی استفاده میکنی با استفاده از فایبر ناموز دارین خانوم داری دختر داری مادر بزرگ امه بزرگ خاله عروس و مانند اینو نوامیس مردم اینجا میتونیم پیشگیری کنیم از انواع سرطان ها حتی سرطان هایی که اختصاصی به زنان داره مثل سرطان پستان سرطان دانه رحم سرطان رحم یا بحث فیبر آدنوم ها فیبران رحم میان، پاپیلان، ومانند اینها کمک میتونی به ناموست خودت و دیگران کنی کورکورانه قافلانه، هی آرد سفید، نون سفید، کیک سفید، بیسکویت سفید، نون ساندیویجی نخور که ذریعی به خود آسیب به خودت و به دیگران افزایش پیدا کنن پس قللات سبوستار دشمنان از خودمون یاد گرفتن و الان در اروپا و قردین و آمریکا و کانادا 80 درصد ارض مسرفیشون 80 درصدش سبوس داره 20 درصدش ارض سفیده اون 20 درصد از سبوس های غلات رو میبرن به گاوداریا و مقداریه و اینها دامداریها این حالان ما آرد نون وایا شینی پزی ها و ماننده او هشتاد درصدش آرد سفیده بیس درصدش سبوسه و هشتاد درصد می کنن دامداری و مغداریه. ها می بگم دشمن بیدار از ما دازیده خوش عمل میکنه ما تو همون جهل خودمون قفلت خودمون همجور قفلت زده عمل می کنیم چه کاری همون؟ با معصوم بودن یعنی هشیار بودن دل بخواه خود عمل نکن. چقدر تو رو آیا داریم میگه سویق سویق یعنی همون شیعی که خردش میکنی یا با پوستش خردش کن حالا سویق العدس سویق الحنت سویق شعیر بحث خرد شده عدس یا خرد شده گندم یا خرد شده جا بمانندو حتی جاورز یعنی ارزن که بعد قبلونا بحثی کردم این همه تو روایاتمون اومده چه صالح از قدیم اینا رو تو روایات رو علامه مجلسی شخور و عاملی محدث نوری چه از علمای جدیدمون مثل آیت الله شخ عباس تبریزیان آیت الله مصطفی نورانی آیت الله محمدی رئی شهرین تو دانشنامه احادیث پزشکی ممانندو من ما داریم میگیم اصلش پیش خودمونه چرا عمل نکنیم؟ چرا اجنبی عمل کنه خیرش ببینه؟ ماش بلنش کولاگیسای قرازه چه بسید ما بفرست نه خودتون عمل کنید تا موهاتون روش کنه این هم این مصطب که مصرف قلات سبستا کلمه توضیح هم. کسایی که آب کم میخورن یا آبجوش جوش کم میخورن چارده زرر داره کسانی که به مقدار لازم آب و آبجوش جوش بلهم میخورن چارده فایده داره یک فائدش شادابی پوست ترابط پوست حفظ رطوبت پوست مندگاری پوست و همچنین بوشته متعارف پوست و عدم چربی اضافه سطح پوست و موهای چرب خب معلوم شد مؤمنام باز مطالب دیگری هم هست وقتی آمریکایا جزوه های چاپ کردن اشکال نداره و یک کم مطالب حق گفتن بازم اشکال نداره بر نیست حالتشون سرمایه و, و تجارت و اونم تجارت جهانیه و مثلا آخر جزوه هاشون تا دارو آورده میگه مثلا ای چار تا دارو امریکایی که بخری ها موات ای طور ای طور ای, طور ای, طور ای طور. حالا مثلا یکی از داروهای شیمیاییشون تو بحث ویتامین های ضروری برای پوست و مو ویتامین آ، ویتامین ب، ویتامین س، ویتامین ای، ویتامین دیه پنج تا ویتامین ویتامین های ضروریه پوست آ، ب، دی، ای، سی بعد خب. اینجا میاد چیکار کارم کنیم میگه بیا ای شربته، نیچرمیده، امریکاییه ویتامینه، بخواه فارماکوپی یو اس پی آمریکایی. اصلا از اینا بخور که این ویتامین های ضروریه بدنه تعمیمشه حرف حقش درسا اما اینجا نیتش چیه کاسبیه طبابت نیست اینا کاسبی بعد مثلا این آخراش هم مؤمنان بازیکی دو تا دیگه سه تا دیگه هم میاد مثلا میگه مال بحث سلنیان که از دکترای بزرگوار چی در کتاب معارف گیاهین دکتر میرحسین حیدر مطالب ارزنده ای آورده حالا این آمریکایی و یک داروی ضد سرطان هم است سلنیوم ما بحثش رو تو بیماریهای زنان کردیم تو 47 جلسه حالا منظورم اینه تو بحث رشد مو و مندگاری مو و عدم ابتلا پوست بدن به سرطان پوست در اثر زیاد بودن در مجاورت اشعه ماوراء بنفش خورشید یا افته درصد سلنیوم بدم میگه بیا مثلا این داروشیمیایی سلنیوم نیچرمید بیا این مصرف تا ایجور ایجور ایجور نشه حالا باز هم توضیح میدم تو سیدیه بیماری های زنانم قشنگ توضیح دادم مخصوصا در قسمت دو جلسه آخر یعنی جلسه چلوشیش و چلوشیش قشنگ توضیح دادم در بحث سرطان پستان توضیح دادم چیها بخوری که توش سلنیان هست و یک پیشگیری و درمان کننده قوی از سرطان اونجا توضیح داد در موامنا مثلا آخرش میاد میگه زینک زینک نیچرمید سی میلی گرمی مثلا بخوری که چنین چنان شود و موات فرم بگیره و حالت بگیره و خیلی کلبنگه سشوار و بابلیس رو از این حرفا نشیم سشوار و بابلیس دیگه من در آردن به این اضافه کرد برم اینجا یه عکس چخانه انداخته موی طبیعه طرف هست بعد این برش کلاگیسته که اومده تا آخر کسی از دور که نگاه کنه خیال میکنه مثلا موی خوش بافته یه چخانه اینجا تبلیغاتی بعد آخرین داروش که شماره چارش باشه باز اینجا نمیشته مومنام ویتامین سه جویدنیه نیچ میگه خمیده عقلم هدسته. پرتقال میخوام ویتامین سی فشار خونم بالاست ویتامین سامم کنه گیری فروت میخوام تو صبح دارابی بیم مخو؟ و نارم میاد. فا پرتقال گیری فروت گیرم نمیاد دو ساعت قبل غذا یا دو ساعت بعد غذا هندمون ای رسیده سرد غیر یخچالی چهل مخو؟ سرشاد ویتامین سی لازم نیست که شیمیای خارجی بخواد حالا مخوام بگم تحت نظارت وزارت بهداشت و مانند او ترجمه همین امریکایی رو کردن و تو ایران پخش میکنن دست مردم میدن گاهی داروخونه ها میدن گاهی مطبوا ها میدن ما مخالف با علم جدید نیستیم ما میگیم تبابت کن نه تجارت بعدا نظریات خودم رو میگم همین هم خدمت شما بگم ابون می خونم. هیچ انجمنی در داخل کشور یا خارج کشور ما کسی رو نه تایید می کنیمیم نرد میکنیم. چه میخواد انجمن انتقال خون ایران باشه چه میخوادجم حجامت ایران باشه؟ چه انجمن کیک باشه؟ چه انجام کیک باشه؟ ما نه کسی یا تایید می کنیمیم نه کسی رد میکنیم از از اسم ما یا عکس ما هر کسی بخواد سو استفاده کنه ما جز هیچ انجمنی نیستیم. ما فقط میخوایم روایات اهل بیت اسمت و طهارت رو در داخل و خارج کشور توضیح بدیم. و برتری کلام معصومین رو به داخل کشور و خارج کشور بیان کنیم. تبابت کنید تجارت نکنید. یعنی خرج اضافی برای مریض نترشین، مریض تیخ نزنید، گناه داره و درد بیماریش میکشه. تو دیگه یک درد اضافی بهش تحمیل نکن به عنوان کمپولی یا بیپولی پس مبحثمون بعد یکم دوباره که بسانتی میگه اما هیچکی دلش نشکن ما همین رو نگاه حالا مومنان حرف ما بچه رو یادداشت داشت کنین؟ ما حرفمون اول و آخر همینه مبحث کلی طب اسلامی بحث کلی در قسمت طب اسلامی رسالت جهانی در طب مبحث عاممون رسالت جهان اسلام در طب مبحث خاصمون رسالت شیعان عشری در طب اسلامی مبحث اخستمون رسالت مراکز علمی در داخل و خارج کشور در زمینه طب اسلامی. مبحث خاصلخاصمون رسالت حوضه های علمیه شیعه اسن در بحث طب اسلامی. حالا میخواییم دوازده، سیزده، چارده مورد موردو توضیح دید. یک. از حیث عقیدتی بسیرتی باید بدونی پاتو کجا میگذاری الله و طبیبان چقدر سند داریم اشیه اوستانی الله و طبیبان پس میخوای پاتو جفای خدا بگذاری آیا خدا از کسی پول میگیره رسی پیشگیری یا درمان رسی وقایه یا رسی حمیه یا رسی علاج یا رسی شفا آیا از کسی پول میگیره ای مردومه تیغ میزنن یا نعمه طبیب یا نعمه حبیب یا حبیبنا یا طبیبنا طب اقرار الاعلى علی انفسهم جایز نافذان که قاعده فقیه میخونید عمل کن وقتی خودت اقرار میکنی تو دعای جوشن کبیر در ماه مبارک شبای احیا و قدر غیر او هر و حضور قلب داری خیلی فواید داره جوشن کبیر آیت الله شیخ محمود اکبرزاده تو کتاب اربعینات یک صفحه و ای اورده فواید شد حتما بخونید خیلی مهم کتاب اربعینات آیت الله شیخ محمود اکبرزاده در جهان اسلام نظیر ندارد به ترتیب حروف ابجد نوشته شده هرچی چی الفاظ 40 40 ال 40 ال 40 تو روایات شیعه هستی همه رو اینجا جمع کرد پس اینا به ترتیب حروف هم هست مؤمنا تصلا فهم بودین این کتاب تو جهان اسلام نظیر نداره من گشتمو بیش از 300 کتاب تو بحثای 40 بعضیا ادبیاتی میگن بعضیا کلام و فلسفی میگن بعضیا اخلاقی میگن بعضی ها از هر بابی حدیث میارن اما اینکه به ترتیب حروف ابجد باشه و باب باب و موضوع بندی باشه تو جهان اسلام در شیعه و نظیر ندارد شما نگاه کنید بر حتما متوجه میشید نظیرم مستدرک رجال الحدیث علامه نمازی من نظیر اصول ستت عشر فیاء المحمودی پزشکی تکرابی نیست چه پزشکی عقیدتی و چه اخلاق چه تربیت چه پزشکی جسمی امروز که آخر زمانه مومنان روز تکربی نیست چه تب به سنتی چه تب به جدید هر دکتری خیال کنه یا هر گویندهی خیال کنه همه چی میفهمه همه چی درست میگه این حرفا اینطوری باید مشورت علمی داشته باشی باید تحقیقات گذشتگان رو مطالعه کنی باید تحقیقات و فجوهش زمان حال رو همه رو مطالعه کنی گرفتی این مومن چی میگن؟ پزشکی تکروی نیست درمان تکروی نیست چه میخواد متخصص دارود شیمیایی باشه یا پزشکی جدید باشه چه میخواد متخصص طب سنتی مکمل باشه این اشتباهیه که بعضی ها داخل خارج کشور مرتکب میشن هنوز تو شماره یکی ما امام باقر علیه و السلام میفرماید نحن طبیب الاطبا ما که پزشک پزشکانیم راست میگه امام باقر شکافنده علوم چرا چون اسمت طاهره مسون از خطا و اشتباه هر چی بگه علم و یقینه یک پایه مثبت دوم علمش لدنیه علمش کسبی و تحصیلی نیست که آماری و سطحی باشه یا علم حسی و تجربی باشه که یک سوم علم س و المؤمنات تو یک شاخه فقط پزشکی که متخصص متعهد نیست در همه شاخه‌های علوم حوزوی و دانشگاهی الهی و ملقیامه فوق تخصص متعهد معصوم است چون خزان علمه به این سه دلیل نحنو طبیب الاطب ماچارده معصوم طبیب الاطباء کسی که مراجعه میکنه به معصوم مراجعه کرده بر فوق عقل مراجعه کرده به رئیس القدا این حرف اوله مطلب دوم خواندن روایت ها و احادیث چهارده معصومین سوم فهمیدن روایت ها ثقل چهارم عمل کردن بر طبق روایات حالا در هر زمینی تو مباحثه ما پزشکی اجرایی تو بحث پیشگیری یا درمان یا ساخت دارو به صورت مفرده یا مرکبه و مانند پنجم آموزش صحیح روایات اسلامی من اکثر کتابایی که جدیدا می‌بینم و متاسفانه یا اشتباه چاپی داره یا روایتش که سفه که یا ترجمهش غلط کرده همچنون چون تون تون کتاب چاپ میکنیم یکم بابا تحقیق پجوهش کنیم بحث مطرح کردن خود نباشه بحث مطرح کردن کلمات اهل بیت اسمت و طهارت باشه این هم یه خطریه که هم تب جدید تهدید میکنه هم تب گیایی رو باید یک سازمانده دقیق بشه یعنی نظارت باشه بر همه چیز نه که اگه رسو خودش هرچی میسه هرچی هم دارو میده اینجور نباشه بل شو میشه سریع به آسیب به با افراد بالا میره مطلب شیشام. تحقیق و پژوهش صحیح در پیرامون روایات باشه یعنی مایراد معصوم ماقص در منحاض الالفاظ بعد معصوم خزان علمه تکنگر نیست جامع نگره یعنی سلامتی فرد یا برگشت سلامتیشو در همه جا در نظر میگیره در دنیا برزخ قیامت فقط این بیماریش در نظر نمیگیره اثرات تخریبی این دارو هم تو ذهنشه که جای دیگه خراب نشه مکانیسم اثر دارو مکانیسم اثر دارو هم محصوم کاملا می سنجه. پس از حیث تجویز دارو مقدار زمان دارو مقدار مصرف دارو در چه مدت با چه کیفیت تک باشه زمینه باشه محلول باشه مراکب باشه حب باشه کپسولی باشه معجوم باشه قیره این باشه همه اینا رو آدم ما رو باید بدونه عجله نباید کنه گرفتین مومن ها چی میگه؟ این هم مطلب ششم، مطلب هفتم تبلیق صحیح روایات معصومین و ترویج صحیح اونها در داخل و خارج کشور در منطقه و جهان با اسباب ای که خدای متعال تفضلن در اختیار من شما قرار داد مطلب هشتم تولید اساتیده طب اسلامی نزیر آیت الله شیخ عباس تبریزیان ماشاءالله ماشاءالله آفرین آفرین مثل آیت الله نورانی از علمای قدیم مثل مرحوم آیت الله که در شاخوهای مختلف علوم بیش از هشتاد تعلیف دارد در حدیث، در تفسیر، در فقه، در ریاضیات، در نجوم، در اخلاق، معدن الجواهر، همچنین در پزشکی کتاب داره. مرحوم شیخ بهایی، این مهندس عمران و پلسازی ممانند و این متخصص ریاضیات در حدیث، در تفسیر، در فقرشیه، حتی در تعقیبات نماز، حبل المتین حتی در علم اعداد علم حساب کتاب داره علم الاعداد نگاه کنیم آحاد عشرات معاد آلاف تقسیم تحسین ها رو میکنه. همجور مومن ها بیاین حتی بعضیشون رفیق امام خمینی هم بودن مثل سید حسینی که بخشی از فقه شیعه رو به صورت شعر بیان کرده اما کل فقه شیعه رو به صورت الفیه مرحوم علامه بحر العلوم بیان کرده تو بحث نجوم کتاب دارد تو بحث قطبین و معتدله شمالی و جنوبی تشخیص قبله و مانندو کتاب دارد یک کتاب دارد همه اقای حسینی پیر از علمای جدید ما که بعضیشون مرحوم شدن همچون علامه طباطبایی تو بحث جبر آنالیز و مانند او که اساتید و های دانشگاه بودن آقا یکم آسان‌تر خود استاد ما طوریازیاد جدید ها هر پنجشنبه از دبیرستان جان آرام قلهک میوام تو می میام درس مرحوم علامه طباطبایی میشد ما راهنمای دبیرستان توین سال اول در و سه سال رانمایی تا این محصه جهان آره بلحق تیران منظورم معلم ریاضی جدید ما میکن که خودش از دکترای دانشگاه و هنوز هم مؤمن ادامه دارد بعضی از نمیخوام بگم میخوام افراد خوب در تیر رس دشمن نباشم حک نشون مطلب نهم تولید طلاب و دانشجویان متخصص طب اسلامی مطلب دهم ده تألیف تعلیف کتاب مرجع تخصصی طب داخلی اسلامی و عدم اکتفا به ترجمه متون خارجی پزشکی از غرب شرق چرا در اطرام امامینا این همه متخصص متعهد داریم تو رشته‌های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی چرا کتاب‌های مرجعتون فقط ترجمه کتاب‌های خارجی است این همه متخصص متعهد با هم دیگه بشینیم کتاب‌های تخصصیت طب داخلی در شاخه‌های مختلف علوم بنویسیم لازم نیست همهش جدای غرب و شرق باشین ما تکدی در اسلام نداریم حتی جدایی علمی تحقیق و پجوهش داریم کسب علم داریم اطلب علم ولو به سین. اما نداریم که بری گدایی کنی تحقیقات و پجوهش خودت رو تعطیل کنی نمیشتن کتاب های تخصیصی علمی تعطیل کنی یه چشمت به شرق و یه چشمت به قبل بعد همه رو پاتی کنی تحویل بدی التقاطی فکر کردن التقاطی عمل کردن انسان رو منافق بلفعل می کنه. ما میخواییم موحد بلفل باشیم و موحد بلفل باقی بمونیم پس باید کتاب مرجع موجه پزشکی و پیرا پزشکی خود متخصصینه متعهد داخلی بشینن با هم دیگه این مباحثات علمی اکادمیک علوم فکرها و تحقیقات و فجوهش هاشون رو هم بریزن بنویسن نه اینکه ترجمه اصول طب داخلی هاریسان یا ترجمه فیزیولوژی گایتان یا ترجمه طب داخلی نیلسون و مانند اینا یارالش تشخیص بیماری ها هارورد فرید من ها تا که باید گدا این خارجی باشیم که به جایج اصلا قلطه این همه متقصیز متحد در های مختلف اولورد داخل قاعد کشور داریم باشیم با هم دیگه بنمیسین موازی عمل نکنین تکربی نکنین. پایان پایاننامه های مشابه نباشد همه تون انسانین عاقلین با شعورین همه تون با هم بشینید گفتم جامعه پزشکی جای تکروی نیست و همه با هم بشینید تخصصهای مختلف کتاب مرجع بنیسید هم خواهد بفهمید چی نمیشتید هم دیگران که مطالعه میکنن مفید باش. حتی در دانشگاه های سراسر کشور فقط کتب مرجع ترجمه کتب خارجی نباشد بلکه متخصصین متعهد داخلی خودشان کتاب‌های ارزشمند تخصصین در طب داخلی و مانند او در علوم پزشکی و پیراپزشکی بنویسند محقق و پژوهشگر باش ولی گدای غرب شرق نباش زیرا قدیم در اسلام نداریم مطلب دهم ده احیاه آیات قرآن و روایات و احادیث مربوط به علوم پزشکی و پیرا پزشکی در سطح حوزه های علمیه و حتی ایجاد درس خارج فقه پزشکی اسلامی به خاطر نیاز واقعی انسان ها در داخل و خارج از کشور، به بمشتهد صالح مخلص متعهد متخصص که حاذقا از جل و رؤوفن بالعباد باشد همچون خدای روف همچون امام رضا رؤوف چه بحث رساله ذهبیه و مانند او از برای رفع بیماری های جسمی، و روانی و روحی مردم و پیشگیری از آنها زیرا انسان جسمانی و روحانی خلق شده و در قیامت هم جسمانی و روحانی محشور می شود دوازده بایستی ناهنجاری های پزشکی برداشته شود خیلی آنها هست مثلا این مصطب بیرویه دارو در کشور ما هیچ جای دنیا نیست بحث خود درمانی با داروهای شیمیایی مصرف بالای قرصهای آمپولهای غیر استیرایدین مصرف بالای آمفتامین ها مصرف بالای قرصهای خواباور مصرف بالای مسکن ها چه افتزایی تو کشور ما تو داروخون ها این که بیماری و, و مصمومیت ناشی از داروهای شیمیایی بالا میبرد هدفت کاسبی نباشه فروش دارو هدف پیشگیری و درمان باشه یک ناهنجاری همینه فروش بیرویه داروهای شیمیایی و مصرف خودسرانه به نوع خوددرمانی این یک ناهنجاریه. چه در کسایی که دارو می از دکتر و غیر دکتر کمک پزشک ممانند و چونهایی که نسخه پیچن تو دارو فقط می‌کنه مغازه فروشیه پس این تیکه اول بایستی های پزشکی برداشته شود. بایستی رفتارهای منفی پزشکی برداشته شود. اینکه بیمار از وارد میشه. هنوز طب تشخیصی رو انجام نداده از دم، برعکس بگیر، برای آزمایش ادرار بده. برای آزمایش خون بده. این رفتار منفیه هم با خودت که کم کم در طول زمان سطح تخصصی تبه تشخیصی و بالینیت افت میکنه مطالب دیگه ملکه میشه برات یادت میره خودت افت علمی پیدا میکنه ایچه اشتباه فاحشی. اکثر این اکس فردار یا غلطه اصلا نیازه به اکس فرداری نیست هی برستون و گرافی بگیر امر آی بیره. سی تی اکثر اینا علکیه هیچ جای دنیا اینقدر عکس نمیگرم یا رفتار منفیشون با زنان حامله مردم آیا دکتر باید به دل بخواه بیمار عمل کنه؟ مثلا حج خانم دکتر حج خانم دکتر نه من دوستانم سه زارین بشم درد نکشم تو باید به دوستی بیمار جاهل عمل کنی؟ تو بحث زایمان زنان حامله باید به وزیفت عمل کنی چرا به خاطر پول اکثر اینها رو سه زارین پول پرست زایمان طبیعی مثلا 90 هزار تومن 150 هزار تومن بگو 200 هزار تومن میگه حجه پا چرا یه, یه ساعت وقت حسین بذارم خب میگیرم سه زارینش میکنم یه ساعت وقت میذارم از 700 هزار تومن او میلیون و 500 هزار تومان پول میگیرم تو میگی از زنی تو طبیب جراحی باید ببینی نیاز واقعی جراحی هست یا یعنی نه اکثر این سزارینا تو کشور ما و خارج از کشور الکیه بحث پول پرستیه به کسی بر نخوره. هر متخصص جرایی می بر برو برو تو قسمت حراست به بحثای وجدانی وقت خم... مطلب رو میبینیم این نه پیشگیری از بیماری نه علاج و درمان. این طول پرستیه ما مردم قیمه قیمه قیم کردن. این رفتار منفی تو, دو... تو دوازدهان ها هنه ادامه دارم بایستی خشونت های بیرویه یه پزشکی برداشته شود جراحی مد نشود آنها مد شده آنها جراحی مد شده تکنیک‌های نوین جراحی یا جراحی کارند دو جلد قطره تو دکتر ایرانی ترجمه کرد بابا جراحی نباید تو مملکت ماتچن جراحی نظیر لیزر آخرین درمانه نه اینکه اولین درمان شده اندازه تو بحث اکتوا یک تبی اکتوا تو روایات اسلامی چی میگه؟ میگه آخر دواء الکی آخرین دارو دست داک کردن یا سوزندن حالا به اسلام امروزی با لیزر بایستی خلق و خوهای سیعه پزشکی برداشته شود فرضی بافی دروغ گوی فریب دادن بیمار بیمار رو سر درگم کردن و مانند اینها بیمار رو تیغ زدن و مانند اینها می دونند خرج اضافی برای او تراشیدن گاوبندی کردن بین آزمایشگاه و داروخانه اینا بعد طرسانت بیماری که وسط فرستادن بفرس هم اینایی که میگم واقعیت داره من به خنده میگم خنده روی تلخی واقعا همین جوره بعضیا اینایی که میگم واقعا جور. بایستی بی بندوباری و ولنگاری و بی حجابی در پزشکی بین پرسنل آن نباشد. باید روابط عمومی ناسالم بین پزشکان با یک دیگر و با مردم نباشد. بایستی پزشکان غیر متعهد در اجرای مسائل پزشکی نباشند. بایستی پزشکان غیر مزدرج، پزشکانی که ازدواج نکردند اولا ازدواج قانونی و شرعی کنند و سپس در صحنه تشخیص و درمان حاضر شوند. اینا رو من به کنایی گفتم زود رد شدم یک چیزای عجیب قریب است نیم بگم خجالت میکشم افت کلام به من اجازه نمیده. بایستی هدف کادر پزشکی و درمان تبابت باشد نه تجارت بایستی روحیه پول پرستی و کاپیتالیستی از صحنه جامعه پزشکی حذف شود یعنی تجارت دارو نباشد تجارت بیمار نباشد تجارت ابزار پزشکی نباشد سیزدهم کادر پزشکی سالم با بدن‌های سالم روان‌های سالم روحیات سالم اطباء سالم اخلاق حسن، تربیت صحیح و رفتار مثبت اگر چنین کادر پزشکی در کشور و یا جهان باشد میتواند در ایجاد سلامت و استمرار سلامت در کشور و جهان نقش ویژه‌ای داشته باشد مطلب چاردهم آخر مباحثم اتباع سالم پزشکان سالم پزشکان واقعی ها از حوزه و دانشگاه اتباع سالم با عملکرد صحیح سالم می توانند زمینه امت سالمی شوند و امت سالم را از حیس جسم و روان و روحیات و اخلاقیات و خلقیات و تربیت و فرهنگ بسازند که چنین امت سالمی به توسط چنین اطباء جسمانی جسمانی روحانی سالمی که توضیح دادم زمین ساز تشریف فلمایی مولا صاحب زمان است. اتا امر الله خلا تصریح می‌کند.